هفتخان با چشم و نگاه و نگاهبانی و پاسداری سر و کار داشت محور اصلی هفتخان کنان که در پایان یافتن چشم خورشید با چشم و با نگاه چشم کار دارد چشم در پرهنگ ایران با خرد این همانی داده میشد، نگاه کردن چشم این همانی با اندیشیدن برای نگهداری زندگانی در همه به کار برده چشمی این چه چشمی؟ چشمی است که از شگفتی ها خیره می شود و در پایان در پایان هفت خان میبینیم که این با خون جگر و دل دیو سفید هست که چشم نگهبانان ایران که کور شدهاند که در اثر خارج از انداز خواهی تیره و تاریک شدهاند این خون این جگر و دل اونها را اثر روشن بین میکند چشم آنها را از خورشید گونه میکند جگر این همانی با بهمن دارد دل این همانی با ارتا یا سیمور دارد پس با خون بهمن و با خون سیمور یا هما آمیختن معناش این بود که از سر خوی و پترت بهمنی و سیمورگی پیدا کردن این اندیشه را در سخنی که رستم به کی میگوید وقتی که رستم پرخوانده می میشود تا به رهایی بیژن بشه رستم به کی رو میگوید زه خرمود بادت به دین پایگاه چو بهمن نگهبان تخت و کلاه ز بادد باعث بدین پایگاه چو بهمن نگهبان تخت و کلا این به خوبی در اینجا دیده می شود و در این شعر سراسر دوازده خدایی که خدایان ما هستند نامیده می و خیلی جالب است که نقش ها و خصوصیات این خدایان در این واجه ها میشوند. می شود در اینجا به خوبی دیده می شود که بهمن نگهبان تخت و یعنی نگهبان حکومت یا شاهی شمرده می شود البته رستموکهی خسرو با اهور و مازدا سرکار نداشتن این در نوشتن از الهاقات دوره ساسانی که در متن وارد شده است. این در دوره ساسانی این خدای نخستین همیشه عوض می شود و به جای آن همیشه اهورامزه گذاشته می شود. بلی از همین شعر این شعر که پاید می کند که دیده شود که بهمن نگهبان است. نگهبان حکومت است. نگهبان شاهی. در اینجا یک نکته باید گفته شود و اون این که ما امروزه واژه حکومت را به کار میبریم. این حکومت اساسا بر پایه حکمت قرار گرفتد، حکم و حکمت اینها بر به ایده اینی که الله حکیم است و ایده حکمت بر این پایه قرار دارد، که شر را میتوان به عنوان آلت رسیدن به خیر به کار برد که این البته به کلی بر ضد فرهنگ ایران است و یک نوع چنگ واژگونه خوانده می شود و یا همون خدعه در عربی باشد که این در این ادیان نوری مقدس شاخته شده هست ولی فرهنگ ایران و اون سراندیشه بهمنی این را نمی پذیروفت است حالا این نگهبانی اون خیشکاریه که ما از این دستگاه و سازمان که امروز ما حکومت مینامیم در پرهنگ ایران از این سازمان نگهبانی جامعه خواسته می و این نگهبانی این فرق با واژه حکومت و این نگهبانی خیشکاری بهمن بود بهمن اصل خرد دنیاست اصلیش که دنیا را با خرد ضد خشم ضد قهر ضد زدار کامگی ضد تهدید می چنین نگاهبانی چنین گونه نگاهبانی خویشکاری حکومت است. یعنی چی؟ یعنی حکومت یعنی نگاهبانی ایران که بهمنیست حقامنیست حقامنی همون واجه بهمن است. این برپایه سازمان دادن و سامان دادن اجتماع بدون و دور و قهر و بیم است. نخستین پیدایش بهمن ماه هست و ما چشم آسمان است که سرچشمه روشنی که مرده میشه چون در ما مجموعی تخمه ها بودن تخمه همه جانداران و همه انسان ها و توخ سرچشمه روشنی جمورده میشد و نابرین ماه چشم یا سرچشمه روشنی بود. خورشید البته از ماه زاده میشد. این و این ماه ماه پور این همانی داده می میشد با مغز و خرد ماه مینگرد که در ماهیشت میآید به معنای این است که بهمن با خردش با چشمش مینگرد و نگهبانی میکند. از اونجا که بهمن خرد ضد خشم، ضد قهر، ضد تجاوز خواهی جدی ارهاب و ترس انگیزی وحشت انگیزی بود نگهبانی بهمن یا هخامن بیان حکومت کردن بر پایه خردی است که زدارکامه نیست و در حکومت گری دست به قهر و تهدید و تجاوز نمیزند بهمن در فرهنگ سیاسی ایران اصل نگهبانی بوده است که ما امروز به غلط واژه حکومت را به جایش گذاشتیم. این نگهبان بودن از این روز که پهلوان نگهبان نامیده می شود. پهلوان با نگاهی که زاده از بینش بنیادی خود اوست نگاهدار زندگی و خرد جامعه از گزند و آزار زدار کامگان است این آرمان پهلوانی حتی در دوره در دوره چیرگی اسلام نیز در سپاهیانی افسرانی سربازانی که یاوگیان خوانده می‌شدند صدها باقی ماند معمولاً در ادبیات ما نمی‌دانند این نقش این یاوگیان چیست نام آن این طرف و اون طرف میآید، ولی هیچ کدام دیگر پیوند این یاوگیان را با فرهنگ سیاسی و فرهنگ نگاهبانی ایران نمیدونه حکومت در این فرهنگ نگاهبان جانها با نگاهی است که از خردی که چشم جان است برمی‌خیزد اینها خیلی مهم است اولا نگاهبان جانهاست نه نگاهبان مؤمنان یا هم ها بلکه جان بدون تبعیض بدون هر گونه تبعیض چه زن چه مرد چه این قوم چه آن قوم چه این ملت چه آن ملت چه این طبقه چه آن طبقه چه زن چه مرد؟ این ببینید اینی نگهبان جان با چه نگاهی نگاهی که از چشم جان از بهمن و هوما برخیزد. این سراندیشه خوب از ما دقت بکنیم این سراندیشه برزده هر گونه حکومت دینی و مذهبی و ایدئولوژیکی است شناخت نگاه از چشم جان که خرد باشد خوب متوجه باشد خرد در اینجا به کلی با مفهوم عقل متفاوت است خرد پاسدار و نگهبان جانس به این معنی در این راستا میاندیشد شد خرد اصل ضد بیم بیم انگیزی اصل ضد قهر تجاوز خواهی اینها در درون پدیده خرد هست خیشکاری خرد اندیشیدن به بهزیستی جان به طور کلی همه با هم به بهزیستی جان میاندیشند این اصل سامان دادن اجتماع اصل نگاهبانی اجتماع خرد در خدمت دفاع از دین یا از مذهبی یا از طریقی یا از مسلکی یا از حزبی یا از طبقه ای نیست بلکه در خدمت نگهبانی از است که به بهزیستی جانها ها نه به بهزیستی مؤمنان نه به بهزیستی هم طبقان هم طبقگان این آرمان پهلوانی به کلی با آرمان اسپندیار که یک مجاهد دین زردشتیس فرق دارد. تفاوت این دو آرمان و تفاوت پهلوان از مجاهد در هفت خان رستام و در هفت خان اسفندیار به طور برجسته مشخص می‌گردد. هرچند موبدان زردشتی در تحریف داستان‌های موجود در شاهنامه کوشیدن که سیمور را جانوری خونخوار و وحشی و درنده و پرخاشگر نشان بدم و اصالت مهر را از او بگیرند همیشه ولی با اشتباهات لوپی که کردم یعنی اشتباهات ناآگاه بودانه می توان به حقیقت گم شده در این راه در این داستان راه یافت این که ما شاهنامه را به عنوان یک اثر یک نویسنده به نام فردوسی بخوانم. نه فردوسی کوشیده است این داستان ها اونجور که باقی مانده است حتی به همون روایت که موبدان زردوشتی کردن به ما انتقال بدهد فقط در برگزیدن این ها نهایت امانت را بخش جده است بهترین گواه بر این اندیشه که گفتیم سخنیش که که خود رو هنگامی که رستم را به نجات بیژن فرا می خاند می رستم برستن چی میگوید؟ می توی پهلوان کیان جهان نهان آشکا و آشکارت نهان گوجین کیانی و پشت سپاه نگهدار ایران و لشگرپنا تو نگهبان ایران مرا شاد کردی به دیدار خیش بدین پرهنر جان بیدار خیش خوب دیده بشود که جان بیدار مفهوم هنر را مشخص میکنه بیداری جان یعنی داشتن خرد روشن خرد آزار، خردی که قهر به کار میبره این هنر است زهربد اون وقتی به میگوید، میگوید زهربد تو بر پیش ایران سپر همیشه چو سی مرغ گسترده پر تو مانند سی مرغ گسترده پر که با پرش همیشه سپر بلایا سپر آزار و گزند تو مثل او هست خوب نگاه کنید. ده در اینجاست که چی؟ که اوهر سیمرغ سیمر نمودار میشه باید. تو مانند سیمرغ گسترده پر پیش ایران سپر جان یعنی نگهبانه آنان از بدیها و آزار هستی. همینجاست که معلوم می شود تمام اون تهمتهایی که به سیمرغ به عنوان خونخوار و پرخاشگر و ترساننده دادن همه دروغ و غلط هست. این سیمرغ یعنی چی؟ یعنی ارتهای خوشه ارتهای حجیر، خوشی تره. با گشودن پرهایش همه فرزندان خود را در زیر پرها، پرهای خود از هر گزندی و آزاری به جانشان باز میدارد به همین علت است که این مهرههایی که به کودکان و اینها آویزان میکنند اینها را میگن خرمک که از چشم زخم دیگران امان دارند یا اینی که در جالیزها خورمم خورمم اسم این خود هست اصل قداست جانب. یا اینی که در, پالی در دشت ها وطک های شخص عروسک های را بر میخیزانند بر می که جالیزشان را از آزار نگه دارد اینها را مترسک میگوند این ها مترسک با, با ترساندن کار ندارد چون که مترس برعکس ترساندن است. مترسک کلمه میتراس بوده است که همون مرداس و همین اسم این خدا باشه یعنی نگهبان آزار و گزند از با قدشت آنها بکنند در همه این جا این ردپاها باقی مده نگهبان جان از گزند نگران هرجانی چشمان سیمور چشمان است که کوچیکترین درد و آزار هرجانی را از دور میبیند از دور میبیند و به نگهداری آن از گزند میشه این همان بینش است که در دینیشت و بحرامیشت دین خوانده میشه برد. در اونجا آورده می شود که دین بینشی مانند بینش چشم کرکس است یا بینشی مانند بینش چشم اسب است یا بینشی مانند ماهی کره ماهی این ماهی کره همون دلفین امپوتماس این کرکس معمولا به مرغ مردارخار گفته نمی شده است معناشی نبوده بلکه کرکاز یعنی مرغ فراز کوه بودن یا کرکاز یعنی مرغ نینواس اصلا یعنی که اسم خودسی مرغ است. چون که این, این مرغ را می که انسان را عصر ناش انسان را اثر به خدا برمیگرداند به سیمرغ و در خو... سیمرغ اثر زنده میشود همین اندیشه است که به رغم تحریف موبدان در داستان ز... زالزری که دور انداخته میشود باقی مونده است سیمرغ از دور در آسمان یکی شیرخاره خروشنده دید زمین همچو دریای جوشنده دید زخاراش گهواره و دای خاک تن از جامه دور و لب از شیر پاک به گردندرش تیر خاک نژند به سربرش خورشید گشته بلند خداوند مهری به سیمر داد نکرد و به خوردن از آن بچه یا ببینید باز اینجا تحریف و مسخازی با توهین به این خدا، تهمت به این خدا نکرد او مرغ خونخاری است و اینجا به خوردن بچه دست نیازید بلکه خداوند در این موقع یک مهری به دل سیمرغ انداخت. این میدانید این ز سیمرغ و گرفتن اصالت مهر از او که مرغ خونخار است و این خدا اهورامزداست که به دل پرخاشگر سیمرغ مهر میاندازد و هنگامی سیمرغ زال را به پدرش شام باز میدهد با دادن پر به زال این پیوند جفت بودن خود با او را بیان می‌کند دادن پر که آتش می‌زند ات هر وقت این, این معانی را نداشته است پر معنای جفت دارد پیر پر در آلمانی شمر دو تا پر دارد معنای جفت است با دادن پر معنیش این بوده است که من از این به بعد جفت توام این جفت جفت بودن یکی با دیگری معناش این است که من همیشه نگهبان توام چون که شمر بدون جفتش نمیتواند زندگی کند باید همیشه نگهداری از جفتش بکنه من همیشه با تو و جفت تو و از این رو همیشه نگهبان جان تو هستم. خدا جفت همه است. خدا پرچ را به همه داده است. سیمور پرچ رو در جان گستر عنی یعنی هر کسی دارای پره از. اوز. از این روز این فقط به صورت اشاره، در این, داستان در این داستان زال بیان می شود گوید مرگ می گوید, می گوید، عبا، عبا خیشتن بر یکی پر من همی باش در سایه پر من با این پر من همیشه در سایه منی یعنی همیشه من نگهبان تو هیچ سختی به روی آورند که و زبد گفتگوی آورند براتش آتش یکی پر من. ببینی هم در زمان پر من اندر زمان یعنی بوری که در چرا که در زیر پر رد پرده پر چه پرست همیشه هم هبا و بچه همونگه بیایم تو ابر سیا بیازارت آرم بر این جایگاه فراموش مکن مهر داویز دل که در دل مرا دل گسل. مهر تو دل میگوید مهر دایرا مهر سیمور را به خودت ای انسان فراموش مکن که مهر من به تو دل من را میگسلن اندیشه جوف بودن سیمور با هر جانی سرچشمه آن است که هرگز سیمور بی جفت نمیتواند زنده بماند همه انسان ها و جان ها جفت و سیمور خواستم حسی کرمی. که جی باشد زندگی این همانی با جفت و یوق دارد چون جی مرهای یوخ هم دارد زندگی یوق هم زندگی جفت کیست زندگی جفت و سیمور گیان جان دیان. یعنی آشیانه سیمور گی سیمر که جی باشد. گی، جی باشد دانه های وجود خوچه گوم در تن هر انسانی و جفت هر انسانیست این است که همیشه نگران و نگهبان جفت خود که هر می باشد. نگاه سیمور و جفت نگرنده و نگاه, نگاه دارنده جفت خود است دو جفت را در فرهنگ جاذری سیمر نمی توان از هم برید این برعکسه فکر ذرگش داشت در اینجا دو دوتا جیب و عجی جفت همداد از هم بریدم در اونجا بریده نیستن همیشه به هم چسبیدن زندگی به هم چسب زندگی یوش. این است که واجی پاس که ما امروزه اون را به کلی بی ارزش کرده ایم به معنای همین جفت است. حالا چرا بیارزش ارزش کردیم؟ برای خاطری که در فرهنگ ایران ننگامیزترین ترین شخصیت ها یک صفحه حافظ را با دقت بکنید یا شوهرای دیگر محتسب فرد ننگی نیست میره حساب مردم رو میرسد چوب و شب عمره به معروف و نحی از کار این نگخبانی نیست این تپتیش مردم هست. این استبدادی عقیده و مذهب بر خرد مردم هست. این گرفتن آزادی اخلاقی از مردم اینها اینها همه بر ضد چون که نگخبانی بر اساس آن است که هیچگاه بیم ندارد هیچگاه نیادارد و هیچگاه اندیشه و فکر خود را به جبر تحمیل به مردم نکند. کلمه پاس درست همین کلمه پاته بوده است این دیواجه ت و سین اینها واجه است که به هم تبدیل می شود چون که این پاته مثل ته انگلیسی نوشته می شود و این وقتی برگردانده می شود به پارسی جدید یا سین می شود یا زه می شود بنابراین یا د می شود می شود پاد امروزه شده است پاد ما می پاد زهر پاد شاه این همین کلمه هست. حالا اون جایی که پاس هست ببینید اینجا جراته تا این اندیشه زردوشت راجع به جای نای افتاده بود این پاس این پاس معنای جفت بودن داشت معنای نگهبانی داشت وقتی که ایده همزاد زردوش جا افتاد که دو همزاد از هم جدا و متضاد ده معنای پاد شد معنای متضاد است که در واجه ها هر دو معنا را پیدا میکنیم اینها بیان دو دوره مختلف است یک دوره ای هست که هنوز اندیشه زردوش جا نفتاده است یکی دوره است که اندیشه زردوش جا افتاده در اصل پاس به معنای چیز به معنای جفت حضور همراه بودگی توعن بودگی اتحاد میت با کسی بودن است کلمه پاسه هنوز این معنا رو دارد یعنی در باجنامه ها با تصویر زردوشت از همزاد که جفت باشه معنای پاد اول شد باجونه ساخته شد از این پس پاد معنای زد را پیدا کرد. چون که مثلا گفتیم پاد یعنی زد زهر. ولی پادشاه در اصل معنای چی را داشته است پاد و معنای جفت هست. شاه اسم سیمور بوده. شاه فقط اسم سیمور. پاد یعنی جفت و یار سیمور. این بهرام بوده. بهرام جفت سیمور بوده. و این دوتا جفت با هم نگهبان ایران بود کادشا یعنی جفت سیمار حالا در جای دیگر که پت، پتیاره مشهور شده است پتیاره پیتیاره این درست معنای زردوشتی در این چیره, چیره شده است و معناش در طورت که در اصل معنای پت یارک یعنی جفت یارم معنای جفت است یعنی جفت سیموره ولی بهرام در اصل در دوست برزده این چهره بهرام این, این همانه میدهد با انگرامین اینو با انگرام این است که پتیاره درست جفت سیمرغ و چون که این اصل همزاد را نمی است جفت و سی مرخ فتیاره شده است مخالف و شده است درک اینها فوق العاده اهمیت برای ما دارد چون که اینها اساس این واجه ها اساس تفکر امروز ما هستند. دانستن پیش تاریخ اینها پیشینه اینها فوق العاده به تحولات فکری در ایران به شیبه تحولات فکری هدایت میکنه از اینجا که نگهبان و محافظ و حارس و حامی در اصل به معنای کسی است که همیشه جفت و توامان و همراه همراهه کسی که نگهبان ایران است یعنی جفت یعنی همیشه متصل به ملت است متصل به جانه از این رو جفتش را که افراد ملت هستند همیشه نگاهداری میکنن همیشه نه بیم میدهد نه می آزارد، نه و با نگاه داشتن می و مانع از هر گونه آزار و گزنی میشود نمیگذارد که محتسبان به جان ملت یکتن و آزادی را از ملت بگیرن ببینید این واژه را به کلی زیباترین واجه های ما را پر ارزش در این ما را متعفینترین واجه های ما, ما کرد. کاستار میاد رئیس جمهور مملکت میشه اون وقتی برای صد سیوند همه سینه میزنن جوف بودن معنای مهر را مشخص می کرده است. اینست که در فرهنگ ایران واژه مهر به کار برده باشد برای ما امروز خنددار است که حکومت چجور مهر میبرد. برای اروپ در اروپا هم نقش حکومت رو مهر برزی نمی دانند. این مهر از کجا آمده این واژه مهر از همین میته یعنی جفت یک معنیش معنای جفت است یک معنیش اتحاد و اتصال و وصال است این دو معنی نشان میده که معنای مهر که همزاد معنای را که زردوش به او داده است نشواست حالا حکومت هنگامی اصالت و حقانیت دارد که نگهبان باشد نگهبان و جان هر پردی باشد ببینید دواجه نگه ها همیشه در نظر باید نگه داشت همیشه مسئله بهمنه به کار بردن خرد بهمن نه شریعت نه ایدئولوژی به کار بردن خرد بهمن یا به سخن دیگر نگهبان جفت و تو امان با هر فردی در اجتماع بباشه نام این پیوند مهر بود خوب در نظر داشته باشیم که این فرهنگ سیاسی ما کابیه چه افکار بزرگی بوده است ما افتخار داریم که چنین افکار چنین فرهنگ سیاسی بزرگی داریم که به کلی از آن آفرین.